افسونه افسانه بنام خدا، سلام بر شما همراهان علاقمند دنیای جذاب و پر رمز و راز افسانه های ملل و اصطوره ها که پایه های تمدنند افسانه ها همیشه منبع درستی برای شناخت حقیقت نیستند، بلکه صرفا یک داستان و بازگو می کنند البته افثانه هایی هم وجود دارند که رگه هایی از حقیقت رو در, در درون لایه های خودشون پنهان کردند حقایقی که از حوادث و اتفاقات حقیقی در گوشه و کنار این کره خاکی رخ داده و در دل تاریخ پنهان شدند. عزیزان. این بار میخوایم براتون افسانه یا از سرزمین لهستان نقل کنیم که به سال‌های های دور برمیگرده اما قبل از اون باید صفحه کهنه تاریخ و ورق بزنیم و چند کلامی از زمان وقوع این افسانه براتون بگیم. در اول سپتامبر سال 1939 نیروهای ارتش آلمان به خاک لهستان حمله کردند. این تهاجم که در لهستان به لشکرکشی سپتامبر و در آلمان به لشکرکشی لهستان معروفه، تلفات زیادی بر جای گذاشت و مشکلات عدیده‌ای از جمله فقر و گرسنگی رو برای مردم این دو کشور به وجود آورد. تهاجم آلمان نازی به لهستانو نقطه شروع جنگ جهانی دوم میدونند. آلمان نازی که نسبت به لهستان دارای برتری نظامی چشمگیری بود، به سرعت پراگ، پایتخت لهستان و اشغال کرد و بعد از شکستن لهستان در اوایل اکتبر 1939، آلمان نازی و اتحادیه جماهیر شوروی سابق کشور لهستان و به صورت محرمانه و بر طبق قرارداد عدم تعرض آلمان شوروی بین خود تقسیم کردند. در دوران اشغال لهستان توسط آلمان گرسنگی سراسر لهستان را در بر گرفته بود و نازیها تلاش داشتند تا با ریشهكنی فرهنگ لهستانی فرهنگ نازیسی رو جایگزین اون کنند افسانیه‌ای که می‌خوایم براتون نقل کنیم افسانه چیپس نام داره و حکایت روزگار یک خانواده لهستانیه که کشورشون توسط نیروهای آلمانی اشغال شده و اونا مثل مردم دیگه کشورشون در فقر و گرسنگی به سر می‌برن تا اینکه روزی دو سرباز دشمن به خونه‌ی اونا وارد میشن و ماجرایی رو به وجود میارن که حتما براتون شنیدنیه در سالهایی نه‌چندان دور در روستایی در شرق لهستان زن جوان بی‌ویی به نام هلنا زندگی می‌کرد. همسر هلنا سالها قبل به خاطر بیماری از دنیا رفته بود و هلنا بعد از مرگ همسرش به همراه پدر و مادر همسرش و دو فرزندش آنا و پاول زندگی می‌کرد. اونا مثل خیلی از خانواده های لهستانی در شرایط بدی قرار داشتند چرا که زمان جنگ بود و ارتشی بیگانه یعنی ارتش آلمان نازی به کشورشون حمله کرده بود. خانواده ی هلنا هرچند در حیات پشتی خونشون مقداری کلم و هویج کاشته بودند و یک مرغ هم داشتند که برای خانواده تخ میذاشت. اما با این حال باز هم فقیر بودند و همیشه گرسنه. نه. بچه های اونا یعنی آنا و پاول به مدرسه نمی رفتند چرا که همه مدرسه ها تطیل بود. اونا حتی از یادگیری زبان خودشونم من شده بودند. با این همه بچه های خوششانسی بودند چرا که هلنا مادرشون وقتی جوانتر بود باهوش ترین دختر کلاس بود و برای همین میتونست به اونا هر چیزی که لازم بود بدونن آموزش بده. بله، مادر خانواده یعنی هلنای افسانه ما به طور پنهانی شبها به بچه ها خوندن و نوشتن یاد میداد. تا اینکه یک روز صبح زود وقتی همه تازه از خواب بیدار شده بودن و در طبقه بالا مشغول صرف صبحانه ساده و مختصرشون بودن در خونه به صدا درآمد اومد این وقت صبح؟ هر کی باشه تو نباید در باز کنی. شاید سر دشمن باشن سراز دشمن خ معله نه نکن اومدن تو رو بازداشت کنه منو بازش کنن برای چی ؟ خب ب... لابد همدن تو به بچه آموزش میدی. ماار ساکت چ. هرکی هست انگار عجله داره بچه ها بچه ها خوب گوش کنید شما در مورد درس خوندنتون چیزی نمیگید حتی یک کلمه وگرانه اونا مادرتونو بازداش میکنه. ماریا بچه ها رو نترسون بازداش یعنی چی؟ خب بازداش یعنی یعنی اونا مادرتونو با خودشون میبرن میبرن توی جا بچه ها باشیم من جایی نمیرم پده بازرک اونا توفنگ هم دارن خب سربازه باید توفنگ داشته باشه باید هرکی هست همان در رو از پاشنه نمیکنه. حتم دارم سربازه های دشمنن نه مادر سربازه که در نمیزنن اونا از دیوار هم شده بالا میان پس کی این وقت سو؟ شاید شاید یکی از همسری که به کمک ما ایتیاش داره من میرم در باز کنم ماما نه باز نکن من میترسم نرو دخترم بتره من برم در باز کنم <تصفح> نه پدر من باز میکنم نگه را نباشید اومدم اومدم شما کاری داشتی؟ معنومه که کار داری؟ <مج�> از جوروی در بایکرها ببینم بله بله بفرمه ایتون ببینم تو از دربازو میترسیم؟ نه خوبه پسن شجایی هستیم حالا خوب گوش شده ببین چی میگم <مج> بله وشن با شما سوا. خوبه ما همون روز از واقعی کار کردیم برای بله نهارمونم چیپس بخواهم شدیم بله چیپس چیپس؟ بله چیپس فهمیدی؟ بله بله آقا فهمیدم چیپس اینکی صرف مگین و دست به ما سر ساعت دوازده زور بر میگردیم تا اون موقع چیپس حاضر باشه بگه با یه گوله بله آقا بله حتما حاضر بریم رفیق ساعت دوازده یادت دوازده سربازهای های دشمن کیسه پر از گلولایو به هلنا دادند و به سرعت از اونجا دور شدند. هلنا در رو به پشت سر اونا بست و نفسی به آسودگی کشید بعد هم به چیپسی فکر کرد که هرگیز اسمشون نشنده بود و اصلا نمیدونست اون چیه چیپس چیپس دیگه چیه آه. آه. کیسه چقدر سعیه آه. دوش، آخ او چیقدرم کسیفه کاش اوش... اوش... می‌تونستم یک گروده توی مغز جفتتون خالی کنم عشقالگره‌ی دیوانه نهرابرت، نهرابرت کاش اینجا بودی هلنا دخترم او... کی بود؟ سربازای نازی مادر، سربازه سربازای نازی؟ آده ما، هنابر خدا اون لعنه‌که چکار داشتن؟ خدا شرشیدن سرمون کم کنه خدای با ببینم کسی چی. خودم هم نمیدونم اونا دادن هرچی هست خیلی سنگینه آه. آه. آه. شما اینجا اینجاییم چی شده؟ کی بشته در بود؟ سروازای نازی آدم سروازا؟ آره. خب اونا چی میخواستم؟ هیچی اونا از من میخواستم براشون چیپس درست آه. کنم آه. چی درست کنی؟ چیپس؟ چ... آره آره آره فکر کنم همینو گفتن خب حالا این میگی چی هست خودمم هم نمیدونم اولین باره که کلمه کیپس چیپس رو شنیدم چیپس؟ این کیسه چیه؟ اونا داده خب حالا در رو باز کن ببینیم توش چی الان بازش احتیاط کن دخترم شاید حیوان خطرناکی تو کیسه باشه به این نازی های لعنتی نمیشه اعتماد کرد شنیدی که دیشب پرال گوشت خال کرد خدا به نه خیلیم، حد بان توش کنی شی نیا شکل داده. اما باتوجه بهم ارسا که از پوزیتی دیگر باشه. خوشایدم ارد باشه. سب کنی. معلوم میشه. افج کیری زدن. سیب زمینی. این تو پوراس سیب زمینی. سیب زمینی. چیز زمینی امم ای خب این سیب زمینی ها چی به اون اسم چی بود اون چیزی که میخواستن چی چیپس بود چیپس چیپس بده یعنی تو باید با این سیب زمینی ها چی درست کنی مامان چیپس مامان اگه چیپس خوردنی باشه منم می‌خوام منم می‌خوام بچه‌ها لطفا ساکت هاول بهتره با خاطرت بدین اتاق بالایی یه کمی بازی آره بریم بالا ما بعد یه کمی فکر کنیم ولی آره اگه خوردنه باشه چی ها خب من خیلی گروزم قابل خواهه تو ام. مرد رو زود برین بالا آه. باشه ماما میری پس اخت چیپس آماده شد امو خبر بده باشه, باشه عزیزم باشه ماما. باشه, باشه. ماما. بعد از رفتن بچه ها، اهل خونه دور کیسه سیب زمینی چونبات میزدن و درباره اینکه چیپس چیه و چه چی ارتباطی میتونه با این کیسه سیب زمینی داشته باشه فکر می‌کردند. اونها فقط تا ظهر فرصت داشتند تا سفارش سربازای دشمن رو آماده کنند. زمان در حال گذر بود. کم کم نگرانی وجود هلنای جوان رو در گرفت. ساعتی گذشت اما اونا هنوز نتونستن بفهمن که چیپس چیه و چطوری باید اونو تهیه کنند. اگه نتونیم به موقع چیپس اونا رو آماده کنیم چی میشه؟ اونا حتما ما رو میکوشن. وای! باچو خدای من خودتون رو حفظ کن. نگران نباش دخترم خدا بزرگ اگر برسند بدون اون ماریا نستنب... ما وقتی زیادی نداریم. خب حالا چطوری با این سیب یا چیپس درست کنیم؟ من کتابم هم چی اسم نشدیدم. درسته ما نمیدونیم چیپس چیه، ولی درست کردن سیب زمینی رو که بلدیم. خب، خب برشون سیب زمینی می‌پسیم. ولی مادر جان از ما سیب زمینی نخواستن اونا گفتن چیپس میخوان اونم تا ساعت دوازده ظهر. اون‌ها رو ول بیاین، بیاین این سیب زمینی ها رو بسابیم و پوستشون بگیریم. خب بعد چی؟ بعد اون‌ها رو بر برای سربازو. فکر بدی نیست میتونیم از پوست سیب سیبزمینیان برای شامه امشبمون یه سوپ خوشمزه درست کنیم خب چطوره؟ عالیه پس زودتر دست به کار بشیم که وقت زیادی نداریم اما ب... نه، نکنه این اون چیزی نباشه که سربازا خواستن خب ما یکیم سبزی سبزه تازه بهش اضافه میکنیم شاید چندتا برگی کلم هم توی دیگ بریزیم بد نباشیم. باشه این کارو میکنیم خب من میرم از باغچه چندتا برگی کلم بچیم منم پوست سیبزمینیان رو میصابم و تمیز میکنم بزرگ تند و تند گلولای سیب ها رو سابید و پوست اونا رو گرفت پدر بزرگم در بخاری دیواری آتیشی درست کرد و بزرگترین دیگه آشپسخونه رو روی شعله های اون گذاشت بعد هم هلنا در اون آب و تیکه های زمینی رو ریخت کمی بعدتر هر یک از اهل خونه چیزی رو توی دیگ ریختن تا اینکه سوپی با عطر مطبوعی تهیه شد که میجوشید و جلز و ولز هرچند همه از تهیه این غذا احساس رضایت داشتند اما ته دلشون نگران این بودند که مباده این غذا همون چیپسی نباشه که سربازهای نازی سفارش داده بودند بوی خوب و وسوسه انگیز غذا در اطراف آشپزخونه پخش شده بود و شکم بچه ها از گرسنگی به صدا در بود اونا توی دست و پای مادرشون میپیچیدن و اونو کلافه میکردن شما ها اینقدر توی دست و پای من نخوریم بریم کنار شده. من خیلی گراش نمیم ماما منم گرستمه که میتونیم چیپس بخوریم وقتی که سربازو رفتم آخه من خیلی گرستمه یه چیپس خیلی خیلی بزرگ میخوام ماما سربازو کی میان ساعت دوازده مم... تا ساعت دوازده چاقا مونده ماما چیزی نمونده الان دیگه باید سر و کلشون پیدا بشه نازیای لعنتی اوندورم هیچ چیز سر و کلشون پیدا نشه اونا میخو هنهایی بخورن؟ ماما اونا میخوان هر روز بیان خونه ما چیپس بخورن؟ نمیدونم عزیزم امیدوارم که اینطور نباشی ماما یک کار کنونه از قضایی ما خوششون نیاد اون وقتی که نمی آخونمون من،, من از اونا میتستم اه بچه هم بشروف نیخونی برین کنار بذاری مادرتون به کارش برسه زود بشه باخی... برین کناره آزار... آزار... من برگاه تازه کلم بوش همه جا پیچیده حتم دارم اون فاشیستای لعنتی انگوشتاشون هم باش میکره امیدوارم کوفتشون بشه اون کاسه ها و قاشقارا بذارین روی میز لطفا حیف از این خوشمزه که میره تو شکم این سربازهای هیتلری کاش میشد یه سم بریزیم تو قضاشون تا بمیرم اومدن اومدن خدای خودشر این لعنتی را سرمون کم کم زودبوس سیب زمینی ها آره رو قاییم کنید خواهش میکنم او. تا بعدا با اونها برای خودمون صوب درست کنیم زودباشید <تصفيق> هلنه نه دخترم بزر من بر در باز میکنم نه نه پدر من خودم در باز میکنم من زمان رو بهتر میدونم شما با مادر و بچه ها برید طبقه بالا خوب. باش. <تصفيق> تا از ظهر دیگه بودی؟ نه نه نه بفرمایید چیپس ما آماده هست؟ بله آماده آفرین خوشم آماد خوبه آفرین به بخشناسی تو نمیخوای از رفیق من بابت این آفرین گفتنش تشکر کنی؟ بله آقا مچکرم آیا تو نقمی سادهی داریم بینه تو اینجا تانها زندگی میکنیم نه نه نه، پدر مدر شوهرم و بچه هم هستن، اونه طبقه بلند شوهرت؟ اون کجاست؟ اون چند سالیه که از دنیا رفته آخه، چه مرد بعد شانسی، حیف نیست زن زیبایی مثل تو رو تنها بداشته؟ آره هم اینطوره. ما مایل هم بدونم اسم این بیوه جوان و زیبا چیه؟ هلنا، هلنا پارتیکا خب هلینا پارتیکا چند سالت هست؟ بیست و ساله آخه یکه زود بیوه شدی آه. بلی زن جوون و زیبایی مثل تو هنوز میتونه ازدوازی کنه اگه نه <تصفح> بله که میتونه خب با میتونه چپسو توی آشپزخونه میخورید یا توی حیات تو آشپزخونه. واسه <تصفح> بهتره نه؟ آره خب این بیوه زیبا افتخار میدن چیپسو با ما میل کنن اره ممن پدر بزرگ مادر بزرگ بچه ها بیایی پایی مهمونه اومدن بیایی نهان که کاری باید نهدی در سر به سرت میذاره سلام آقایون خوش آمدید روزتون بخیر بچه ها به آقایون سلام کنید سلام سلام سلام چه گوگوری مگوری های بامازه ایه ببینم اسمتون چیه؟ اسم من آنا فونتاناست اسم پاده بزرگی پدر آنا بود اسم منم پاوله پاول فونتانا پاول، حتما اسم پدر بزرگ پدرت پاول بوده؟ ام. نه قا، فقط اسم من پاوله. <تصفيق> اسم پدر <بزرگ> پدر. <تصفيق> بچه, ها، بچه ها، برید اونجا پیش پدر بزرگ. بدوی. ماه؟ <تصفيق> خب بگه باید ببینم شما درس بخونیم نه نه نه, نه. او آموزش ندیدن ما ندیدنم. هیچ کدوم ثباد خونده هم نوشتن نداریم بله, بله ما بی سوادیم. از این شیطونکا پرسیدم از شما نپرسیدم مارکا اونه اون با هر خوانشون بزا پسن ما با سوتت برگم خب ایندوارم از خودن چیفتتون لذت ببریم قطعا خوشتون میاد عروس هم دست خیلی خوبی داره م -م. خدا کنه منظورشون از چیپس همیگرد باشه بریم مگه خدا می دونه چیپس همیگرد باشه بریم چیپس خوشمزه خوش بفرمایید سرباز با کنجکاوی وارد آشپزخانه شدند و بر سر میز کهنه کوچیکی که در وسط آشپزخانه قرار داشت به آرومی نشستند. اونا کلاهشون رو از سر برداشتن و روی میز چوبی گذاشتن. نگاه همه اهل خونه به اونا بود. در وسط آشپزخانه میز با دو کاسه، دو قاشق و دو چنگال چیده شده بود. همه با چشم‌های نگران حرکات سربازها رو از نظر می‌گذروندن. یکی از سربازان که قدی بلند و موهایی بور داشت، کمی نان چاودار از جیبش بیرون آورد و اونو چند تکی کرد و به دوستش که کوتاهتر به نظر می رسید داد. هلنا با دست لرزان در دیگو باز کرد و با ملاقه مقداری سوپ سیب زمینی رو توی کاسه های دو سرباز ریخت. مادر بزرگ و پدر بزرگ به همراه بچه ها در گوشه ای از آشپسخونه در سکوت به حرکات هلنا چشم دوخته بودند. هلنا کاسه های داغ سوپو در سینی چینی سفید رنگی گذاشت و آروم و با احتیاط اونا را رو روی میز جلوی دو سرباز گرسنه و منتظر گذاشت و بعد خودش به تندی عقب کشید. دو سرباز با تعجب به کاسه های سوب خیره شدند و ناگهان فریاد سرباز مارکو از عصبانیت بلند شد دیگه مارکو آروم باش رفیق پیش غذاست نگه بوش که مت نیست. پس چیپسی که گفتیم کو؟ ها ببین مگه همون قسی نیست که سفارش داده بودید؟ اینا سفارش با چیپس؟ اینجوری چیپس درست می‌کنی. چیپس شما اینجوری نه. و دایمان چشوق یا با مزه. من واسه اطلاعاتتون باید بگم این سوپ نه چیپس. من فکر کردم که این فکر کردیم اینقدر احمق میتونید ما رو دست بندازی. وای به حال تو که سیب زمینی‌های ما رو هدر داده باشین. اون وقت من میدونم شما ابلهای بیصبر و پا آنجر، دا اطرازی نداری؟ ببا بیخیال، مارک و من گرستمه، همینو میخوریم میرهیم دی. من چپس میخوام سوبه بعدی نشده، میتونید امتحانش کنید راست میگه مارکم، بخ... چیز بعدی نشده امتحانش ضرر نداره، رفیم چند برگ کلمم توش ریختیم، خودمونو نرو کاشتیم، تازه‌ی تازه‌ست سبزه ماترم داره <تص> حتما خیلی خوشمزه است مامان میگه وقتی شماها رفتی ما هم میتونیم غذا رو بلدارو... بهتر ساكی چی بله مامان چشمه آخرفین میبینی که ها همه دارم ازش تعریف کنم. کی بخورم قازای <تصفيق> خوکا رو این طریق چیپس درست میخوام کارو فرمیدی بازم میگم این چیپس نیست بله ها شما درست میگیم ما کشتنو کشتن کن ما وقت زیادی واسه بحث کردن دریم باید چی تب مار کردیم من چیپس میخوام تمام اون ساعتی که داشتم تو مزرعه کار میکردم فقط به چیپس بگفی کردم اون واقعا آه ما خوشحالم اگه ترس بختنش بگید قول میدیم دفعه بعد حتما براتون یه چیپس خوشمزه دوست کنی بالا بله بله. بالا بالا داغی کنم اون که شما میخواین برای رفیق کار است بعد نیست رف بخور، اون اونقدران بد نیست این چیه، غذای خوکه؟ من نمیتونم بخورمش، اصلا نمیتونم متاسفم، این غذای مورد علاقه ی ماست غذای مورد، این غذای خوکه‌است شماها غذایی رو به ما میدین که فقط به یه مش گرسه بی خودتون میتونین بدین و بخورنش این قضا به داید خوک ها بخوره، نه ما رفق <تصفيق> نمیکوری، نکار، واسه دیگه میریزیش؟ من نشنیده این قضایی مرد علاقه یا پس حرامش نکنه بذار خودشون بخورن هلینا پارتیکا <تصفيق> آشقال چی درست کردی، ها؟ این چیپسی یا قضای خوک، این چیپسی یا خوک چی ساکتی؟ چیپس درست میکنیم اینجوری سیمسوس کنید اینجوری سیمسوس کنید سر کن چه کاری برچه چه کار میکنید به دمان اون توفنگ و لمن تیگو به این بچه ها را هم مارکو احمق مازی رو بزن کنار باید نه نه نه نه نه چیزی نیست الان همه چی تمام شما بریم بالا زود بشی باید چه آرانا باش عزیز کاری به ماما ندارن حالا زودتر برید بالاسوت زود باشین ما هم الان براتون چیپس درست می‌کنیم همطوری که می‌خوین فقط دست خفه شو پیرزن ابلا یک کلماتی که بگی این گولل رو خفه کن ببین یارا فقط تمامش کن ما گله می‌بینین اونرا اینا یه مش رایته ابلا خاطر دوران چی هست ما رو ببخشید ما تا به حال حتی اسم چیپس شما اگه مش رایته بیسرو پایین که هیچ نمی‌دنس ما میسه خودمو کردم بله ولی غذایی که پختی آشغال آشغال علی آقا بله بوزم متاسفم چرا ابلهی پارک غذای خودت م... چیپسم نمیدونی اگه دستور پختشو بدین دفعه بعده پاعت... معلومه میگم چیپسو چجوری درست کنی مارکا ما وقتی این واسه آموزش آشپزی نداریم ساکت ول کن این زنه بیچاره رو خب لوات بلد نیست دیگه ب... بفرمایید بفرمایید چی بعدی هم نشد نوش جونت تو دیگه باز کمپیر ارجوزه موتاس پام پسر من پسر شما نیستم این مرده ابله، مارکون، تو ما تا این شب با اینا کل کل کنی، ولشون کن تو دلت برای این رعیت های ابله میزوزه، ها، ها نه، مارکون، من فقط میگم خوردن یه مقدار چیپس، ارزش این همه سر و صدار رو نداره، رفیق یه نگاهی به ساعتت بنده هست، ما باست دوتر برگردیم جهانت چیان، جهانت چیان، رعیت های ابله، مدازاتو نگذبه رو حدر دادی <تصفيق> <تصفيق> چه حواسه چیپس کرده بودم لعنتی آرمان مارکو, مارکو، من بهت قول میدم وقتی بریم آلمان خودم یه چیپس دو نسین سابی حالا خیلی بهتره آرمان باشی و یه چیزی بخورید ما باعث توفارمان دی موته و جی نشده زودتر برگردیم. فیف کی وقت زیادی نداریم. اگر نام چیت درسی بتوانم یادم که تو آرمن داریم فراموش نکن. بریم رفیق بریم. ها. امروز ما این کامپیوترمونی شدی. راستش، آستین ترف کنم که منم خیلی حواسه خوردن چیپس کرده بودم مارکو. آره خوب شانس با ما یار نبوده دیگه چه میشه کرد؟ بره این رفی این خسابی شده بیام آره این از این قصر خوکا بریم که آلم دار از این سروپ بدگو به هم میخواه خوش رو بادین بازم متاسفان دارم من شما شوارتون رو با همین قضاهای بولگندتون بکشتند دادین آه کنو برای کنو را یه تا یه ابلاحت دارم ایتان چیف شدی درست کنم حیف از اون مزمت که ب بله دو سرباز ارتش آلمان قرلاندکنان و با عصبانیت خونی زن جوان رو ترک کردند با رفتن اونا اهل خون نفسی به راحتی کشیدند و مادر بزرگ فورا پوست سیب نیا رو به غذا اضافه کرد با پیشنهاد پدر پدربزرگ هم برای بهتر شدن تعم بهتر غذا مقداری هویج به اون اضافه کردند و همه رو با هم پختند چند دقیقه بعد همگی دور میز نشستن و با ولا خوشمزه ترین سوپی و خوردن که تا حالا نخورده بودن. اونا تکه هایی از نون چاودار داره سربوز بد اخلاق نازیرم که جامونده بود توی سوپ ریختن و اونقدر خوردن و خوردن و شکمشون اونقدر پر شد که میخواست به افسانه یا که شنیدین افسانه لهستانی بود به نام چیپس افسانه ها و قصه های ی هر کشوری نشان دهنده تاریخ و شرایط گذشته مردم اون کشوره. همینطور که زندگی گذشتگان برای ما افسانه است زندگی امروز ما هم به طور حتم روزی برای آیندگان قصه و افسانه خواهد بود امیدواریم امروز افسانه های خوب و ارزشمندی از خودمون به یادگار باقی بذاریم افسانه هایی که آیندگان با خوندن و شنیدن اونا لذت ببرن و درس های مهمی رو یاد بگیرن افسانه چیپس تنظیم برای رادیو زینت صالح پور راوی محروخ افزالی بازیگران به ترتیب اجرای نقش، مینو جبارزاده احمد گنجی ناهید مسلمی نگین خاج نسیر منا صفی ایوب آقاخانی. امیر زنده‌دل، کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فقر. صدابردار حیدر صفدری تهیه کننده. زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگیاند افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا افسان دیگر بتروت.